جمالت آفتاب هر نظر باد زخوبی روی خوبت خوبتر باد همای زلف شاهین شهفرت را دل شاهان عالم زیر پر باد کسی کو بسته زلفت نباشد چو زلفت در هم و زیر و زبر باد دلی کو آشق رویت نباشد همیشه قرغه در خون جگر با بتا چون قمزه ات ناوک فشاند دل مجروه من پیشش سپر با بطا چون قمزه ات ناوک فشاند دل مجروح من پیشش سپر با چو لعل شکرینت بوسه بخشد مذاق جان من زو پر شکر باد مرا از توست هر دم تازه عشقی تو را هر ساعتی حسن دیگر باد به جان مشتاق روی توست حافظ تو را در حال مشتاقان نظر باد